فصل 23 سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاتوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند. ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود، او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید، آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ ایسا جواب داد، تو میگویی؟ پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت، من در این هیچ تقصیری نمیبینم، اما آنان پافشاری میکردن و میگفتند او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود میشوراند، اجلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است، هنگامی که پیلاتوس این را شنید، پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید، بسیار خوشحال شد. زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد اما عیسی هیچ جوابی نداد سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرگ و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند زیرا دشمنی دیرونهی تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و به آنان گفت شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید. اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. زیرا لازم بود که هر عیدی، یک نفر زندانی را برای آنها آزاد کند اما همه با صدای بلند گفتند اعدامش کن برای ما برابار آزاد کن این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود چون پیلاتوس مایل بود عیسی را آزاد سازد بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید اما آنها فریاد کردند، مسلوبش کن، مسلوبش کن، برای سومین بار به ایشان گفت چرا، مرتکب چه جنایتی شده هست، من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم، اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می که عیسی باید به صلیب میخکوب شود، فریادهای ایشان قالب آمد. و پیلاتوس حکمی را که آنان میخواستند صادر کرد بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت هنگامی که او را برای اعدام می‌بردند مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و صحرا به شهر می گرفتند صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می‌زدند و می میکردند از عقب او می‌آمدند عیسی رو به آنان کرد و فرمود ای دختران اورشلیم برای من عشق نریزید برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردن و پستانهایی که شیر ندادند، آن وقت به ها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید اگر با چوبه تر چنین کنند با چوب خشک چه خواهند کرد دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدند او را در آنجا به صلیب میخوب کردند آن جنایتکاران را هم با او مسلوب نمودند یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او عیسی گفت ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. لباس های او را به قید قرعه میان خود تقسیم کردن مردم ایستاده تماشا میکردند و رؤسای آنان با تنه میگفتند دیگران را نجات داد اگر این مرد مسیح و برگزیده خداس حالا خودش را نجات دهد سربازان هم او را مسخره کردند و جلو آمده شراب ترشیده خود را به او تعارف کردند و گفتند اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده در بالای سر او نوشته شده بود پادشاه یهودیان یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می مگر تو مسیح نیستی خودت و ما را نجات بده اما آن دیگری با ملامت و اولی جواب داد از خدا نمی ترسی. تو و او یکسان محکوم شده اید در مورد ما منصفانه عمل شده چون ما به سزای اعمال خود می رسیم اما این مرد هیچ خطایی نکرده است و گفت ای عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش عیسی جواب داد خاطر جمع باش امروز با من در فردوس خواهی بود تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت سه بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تک شد عیسی با فریادی بلند گفت ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم این را گفت و جان داد وقتی افسری که معمور نگهبانی بود، این جریان را دید، خدا را هم کرد و گفت، در واقع این مرد بیگناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند، وقتی ماجرا را دیدن، سین زنان به خانه های خود برگشتن. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او بودند، همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می‌دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درست کار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود. و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاه خدا به سر می بردن. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچیده و در مقبرهی که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند سپس به خانه رفتند و هنود و عطریاد تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند